لا حول ولا قوه الا بالله در بحث اجماع از شد که اجماعا کلمات را اخذ و تعرض شد و از شد که به طور کلی همان طواب بخص اجیمان در خبر یه سریفه یه شباش محرم شد توضعه ها دوشنند کردید بعدها در میان علماء احد سنت چه فوقها و چه متکردمین و چه سویی به طور طبیعی اجیمان به عنوان دلیل عبور شد مراد ما از دلیل در این جان یعنی یعنی اجماع در مبارد کتاب و سنت موزه گیری کنه هم در مواردی که بکنه نبود به اجماع مراجعه می کردن یا اگر ظاهر کتاب مثلا غنیمت با تقسیم بشه بین مجاهدین اجماع که زمینهایی که غنیمت باشه یعنی غنیمت باشه یعنیمت یعنی باشه, یعنی باشه, یعنی باشه, یعنی باشه من تقسیم نشه مثل که یعنی اجماع رو در مقابل اون بود اما بکردیم بعدها این شایع بین و میان خود احل سنت از این گراه ها متشده میده این و که در کتابه اصول اهل سنت این احلیه تقریبا به عنوان افراد شرافه شده در محشتر. مثلا نقما موکیوکیو یک چند نقری مونیکر رویتی شما شده خلاص دلون ها واضح نمیگن این عدده ای که شما را باید از این آیا دلالت نمیکنه؟ و به حکم هم هم نمیشه قابل بشیم اگر مجموعه یک کل وافده جارز و مجموع بشه محسوم از خطا نمیشه اگر افراد جارز و خطا بود مجموع هم جارز این یکی عدد شما از در مقابل این زاده میکار اجمال صحابه و وحمن کاشه نه در مقابل کتاب رسوند قبول کردن خلاصه همتشون میگو که هیچی در شریعت مقدسه دسته و محضر نشید نیست از و اگر صحابه اجمال خیلن کاشه کار رسوند این همه محطب سه مالکی علمای مالکی ما همه اجمال اجبت و مدیده اونا هم سهب چون این آقایی مثلا بدیه و تندیدی ها و پدشتیه رو از عهد مدینه دور بکنه ببینید این یعنی اجماع ارده نیا بیتیم این هم برقیمه. این در بزنه زیدی ما هم, هم اجماع بوله اتفر رو بکتیم تو بستن ببینید اجماع صحابه مدینه یا اجماع به خواهد در این نمایه ویدو لا به برد کن که من وایی من خلاصه این به اسلامی از که سرنه برای روشن گوش این هم ماله اما اون به ما مردتون میشه از کردن ما در کل دو راه در که پرسل تا سال های سی این, این که تا کنم که تغییر چند مورد ریز مثلا که تکبیر ما این نواده بعد از ساه های سی سن یعنی سی و و سی ما در فلحه ما و در رسول ما دو مکتب متمایز می‌بینیم. یکی مختب بردار که شعرهای بزرگی امسال شهر محیف و سید محتضا داره بکر که شعرهای معروفی همشون مرمون صدور پدر و صدور و پسر و هست شد که در درن چهارم از افتدای درن چهارم تا اواصل درن چهارم چون در اواصل دیوت و اواصل دیوت یه هایی در این قسمت وجود داره ظاهرم مثلا قلم های و حتی صاحب جو قلم های در این در مسائل رو کرده بودن اونی که ما بعد می‌بینیم تا زمان خروج شیل توسی از مقدار که تا حاضر و پنجار تبدیل هستم از عواطل پرنه تنجام عواطل پرنه چهار و شعر شیل از این طرف و مقدار قوم صدور طرف دیگه ما راج به اجماع و در مقابل او خبر در, در مقابل در سه مکتب محتمایه در شیعه نبیدیم یک مکتب تقسیلش اینجوریه اجماع رو در مقابل خبر میدیم یعنی در طول قومیی یک مکتب ننگونا در, در عرض زهرن چرا با هم بدیم اجماع باشه هم باشه این دو مکتب اتساسه مکتب اول که اجماع خبر رو متقابل میدیم به دو تقسیم تقسیلشو یک دو خبر رو قبل می‌کنه. اجماع قبول رو کنید یک از بوتن اجماع قبول رو بوده خبر رو بوده پس تا ساله چارتاد و پنجه به اجماع در در ما در شیعه سه محکر اصافی داریم بوتن یک محکر و که بیشتش به اجماع رو نیم بود و برای احکام به خبر رو می دو به هر برای احکام به اجماع تحرک کردید با شباید منطور در اینجا اجماع مستدن نیز مراد ترقیه و قبوله با این مکتر به اکس اون مکتر برای خبر هرزشی قائل نبود راه رسیدن به احکام رو دم ترقیه و قبول فتما می کنست ولی داره در این مکث تفکیر که در یک روایت یا آسان انجام میگه اصلا یک روایتی بود سه حکم میداشت یک که پشت علیه بود یک کرده بودن یک که پشت مشروط بود مکتر برداد میماز همه یکی متفقان علیه قبول بودی کسی به خبری خواهر در مکتر برداد نظر نوی مضمون خبر و حکمی که در خبر بود نه خوده خبر به خلاف خورد اما در مقابل این دو مکتب که عرض می کردیم مثلا در کلمات شیخ موفی در جایی که اطلاف به صدور می کنه شیخی تون بایشان بخورد می کنه بعد جایی شاید شیخ موفی نبایش خیلی تونده و عرض کردیم مثلا یه مدتی متاسفانه کار به اونجایی که حاضر شرخی مرموی در بای حیرن نعمتی پیش آمد از کلمه بارد شخص مفید و شخص فضول یک باب قبل از آخر اعتبادا بابون فلکلوم رو از کفیل کتاب اعتباد یک باب قبل از دوبار اون آخر رو اعتباده ایشو از جنده یا حوامات این کسی موسطقی باشه احلاقا با مقصرن در اقره مرادش بزدودی یعنی دقیقاً دعوا به شهرم کشید دیگه که هر کسی دیگه علمای قم مقصران در حقایق جب این قم ضعیفه این گزوه خلاصه من انصافاً حرفی چنگی میترکه مقابل خلاصو شهر صدوق خیلی جالبه وارد این این تعبیر ایشان که شهید مودیرا ایشان هم در میگه واقعاً در درگاه شما میگو با و شما که ناراحت که. ما اون‌گی حساب می‌گیم که عده از علمای های بندر اینکه بدون ما قاعده است، یعنی فقه سنن و سنت، باید هم ایشون میگه بعضی از علمای های بندر را نمی‌بینیم با اون صحبت کردن گفتن ائمه اصلا احاطه به مسائل دینی نداره، تفاوتی به درد نداره. اون این ایشون بیان شما ما، در که ایشون میگه که هوایل خیلی از از در بغدا به این میشونده که شما ها بسور در برزه بره در از همه دعوا اینجا ها میشی یعنی اون فقط در خبر نه اصلا این سه محنا شد تا سال سال, سال, سال و پنجام یک محنایی بود که ما خبر رو قبول میکنیم وقتی در این اختلاف بیشتر طرف مقابل خبر قرار ده خبر رو می میکنیم اجماع رو قبول میکنیم این مکتب قبول بود یک بخصم این که ما اجماع رو قبول فبول میکنیم خبر رو قبول نمی کنیم این مکتب راژه برداد بود که امسال به زیده بارترزه یک قبض هم که من عرض کردم غالبا مرمون شکتوزی که بهش نشه رو می کنم نشه بطارده میکنه یک اصلاحی بین دو طرف بکنه این دو خط و باید محترم برغم اینکه هر دو رو میگیره میگه داد ندادیم که شما رو یا خبر هر دو قبول میکنه ولی دو در کتاب اخلاق ایشون یه دلیلش رو اجماع و اخبار رو این زیاد به کار می‌بره سیل مرتضاو در متین انتصار ناصری یا یه دلیل رو علی اجماع اجماع یه اخبار نمی‌گه شیعه دومیان شیخ صدوقه که همیشه اخبار میاره مثلا هیچ جا در عبارت شیخ صدوقت ما کلمه شیخ صدوقت در هیچی عبارت شیخ صدوقت از کردم به حساس مورد که اون مورد در منتماعی شیخ صدوقت ام لا علی شیخ ابو جعفر دین لر امامیه تعبیر دین اجمان توش نیست دین لر امامیه از حال این ده از ستوکرس مستنسر و دیگران جوانه میگه این ادعای اجماس نه ادعای اجمان نگرده شیفت روز دیدن امامیه این کل اجماعی که از فرماس شیفت رو باقیم پس ما تا سال چارصد و دو ممنون در فکر شیعه و اصول شیعه داریم در در سال 450 و به خاطر که شیفت روزی مجبور محاجر شد و دیگه مقدار که مرکزیت داشت از شیعه خالی شد مثل قبل از محاسرت شهر روسی مدتی بود مثلا هنابه شبیه وحاویانی امروز هستن شروع کردن به یه بازار شیعه حتی به علم از حضر حضرت موسط جعفر حمله کردن و ذریع رو سزوندن این خب از تجارت شهر حالا اگه آن حاضر شد در کتب تاریخ من پیدنشون بستم بستمون قسمت نیست ازا شیعه مجبور به اجربت چون در عوامل سیاسی دیگه هم بود که من نمی خواهر شعر که شیف مجرور به حیرت به بغداد شد که از کردن این مکتب بغداد که اصطلاح ما دوم و بغداده از سالهای 320 خورده این تقریبا شروع میشه تا 608 این اصطلاح ما مکتب دوم و بغداد آمدنش هم با مرگوم و آمدن مرگوم کلینه بغداده از قوم وارده بغداد میشن انصافت زمینهای های مکتب رو میچینن ده سال پنج سال بعد از سال تمام کلمی، آلبومی گذاشت، دادم میشن و یه سیاسیه، دادم داره یه رشیه دارم میگه. از سال 500 سی, سی و چهار، دوست هزارو 100 ساله، آن هزار 100 سی و چهاره. به ساله کاملی، هزارو 100 ساله، آلبومی چه گذاشت، دادم میشه. سلطی سیاسی یه رشیه دار میاد. از یک طرف وجود نامه کلمی. که هم به روایات عمل میکنه و هم تقریبا میشه و به عقی جرام هست نبی و حقی که این معتدره برمان کلیمی مثل ندیوانه مثل یونس نرد و رحمانشاد از یونس هم معتدره تر یونس مثل بزنکیه مثل بزرگانی هستند که هم به روایات کاملا عمل هم. هم به روایات حکوم تدیم میکنن تحصیل میکنن مراجعه میکنن حالایش میکنن هر حدیث رو قبول نمیکنه، کنن می شیابی میکنن محوم کلیس همه اینجز در بحث خبرش را تو باشه توضیح بیشتری بیشتر احزو با ما آمدن کلیمی و بعد تدریجن اده دیگری از بزرگان حتی از خوب آمدن نیست نقولوه نقولوه قومیه اما بعد منطلق وقتا در بشه یکی از کسان در نشر معارف برد و حدیث نشر سیاه بزرگی دار ان شاء الله قصدتی شده اما با خروج شیخ طوسی از بغداد مرکز دنیای اسلام بود بروز و ظهور شیعه در بغداد چه فرقی بود به خیال اینکه از اون در قم باشن برای اون در نظر گذاشت در یه گوشه زندگی بکنه. اگرم چرا من اگرم با خروج شیخ از بغداد این عظمت و بالندگی که فقه و اصول و حدیث و اجازه و وراثت ما داشت انصافا ضعیف شد. ما دیگه آثار علمی مثل این دوله دوم برداز نداریم اینه من کرا کردم در این که ای کنند در حدود 90 درصد مجموعی معارف دینی در تفسیر و عرضی صحفه و ها برمیگه این مکتب دوگون برده نقش مکتب خیلی زریفه حدود 90 درصدش برگرد این مکتب دوم میگه در بغداد. حالا آیا حاله که با خروج شیخ از بردادی از علمی خب تواسنده شد و یه مدتی مثلا خیره مثلا حوضه خوبی بود خود نجم حوضه خوبی بود اما یه بقایه خاندان و آلو با با بودن یه مرزایش در نیستال فکرست منتشه بودیم خودشم از خاندان خودش از ما کسی بودیم یه از ایشون. بزرگان رو که بعدش شیخ بوده سعی کرده بیاره در محاله مردم های مشهداش دیگه ما بعد از خروج شیخ که احتمالا نجاشی هم همین زمان هم بردان زمان هده همین شیخ هست و هم نجاشی نجاشی رو نمیده بیده کجا رفته بردان شده شمه های از نجاشی هداریم الان رو دارشت هم چهار پنجا ایدیم یه نبود یه فرزند شاست دارم مشهوده بین آدمای ما همون یادداشتی که دامن نوشته ماستش که نوشته اند اگر راست باشه نوشته مخفاراباد یا ماتیاباد روستای اتفاق بغداد رو داشت مطمئن شد نجاتشون اونجا رفته در قرار از مشهد به بغداد که به نجات میاد خیلی مهم بوده بودیم واقعا برای ما خیلی خیلی ماند و گل میشه نجاتشی به نجب می خیلی استفاده های علمی ما بیشتر بود و هر حال هر از اون لحظه تا این لحظه ای که من در کسیناتون می سستم یه حضرت محتب بردان به شیعه برنگرد در این هزار رو تقریبا هزار سال هزار سالی چیز کمتر در این هزار سال دیگه ما اون شخصیت های علمی و اون جمع علمی و اون حرکت علمی رو که در محتب در محتب دوم داشتیم تا این لحظه از هزار سال 34 16 سال دیگه میشه سا. از هزار سال 16 سال کم داره تا این هزار سال دیگه برمکش خب طبیعتای چون مخلیت اصول که دیگه به و مکان نیست خود جیهت و عدم و خود جیهت از با جا خودش رو باز کرد از دیگه از بزرگان مثل مرمون علم زهره و بعد به طور کلی متکلمین ما کسایی ای و ایوزی مثلا متکلمند یا مفسرند اینها به طریق ها دنبال بودجه خبروازی را نگرفتند این دقیقه همون کار سید مرتضا شد و هست. این فوقاهایی که ما الان می شناسیم معظم اینها مثل سیر مرتضا شده کردند تبر رو قبول نکردن و به دشمال رو ربوندن. از بعد چهارساد و پنجره بعد زیادی از این طبقه بسط ما که شما تکلمه بزرگی حسنس مرمون مالا محمد عبدالله رازی صاحب بر نفض این کتاب بسیار کامل یک سنی محصر در ری کتاب مفصل ن... به اصطلاح شیر رده شیر رو می‌سلنم حذایی‌ها را که این کتاب الان اینسان نگاه بکنه تو در زمینی که دارد نرفت آنها دوچرخه نگاه بکنه تقریبا هیچ هر آن به هوا گفتن خیلی از اون‌ها سرداری کرده بوده. اشکالاتش به شیعه نه اشکالات به هوا ماست. ما هم الله محمد, محمد, محمد عبدالله راضی خردگی که از فضاراهمی که بوده که رو به نام مثالگون این کتاب به اسم هم چاپ شده اختصارا گای هم نرزش چاپ شده رشتیار بزیار آورده اما خب حسابا شاید بسیار خوبی معلومه های محدث اول مریخ قدس الله من انجام بوده که واقعا کتاب بسیار کتاب خاندانی و نفیزیه بگیر از مبارسات کلامی و و رسولی خیلی معلومات جغرافیایی محترام و تاریخی خیلی اجایب خریبی داره در امین کتاب شیعه اصلا در روز آشورا قده ای و از بزرگان نهر سنت با عنوان شافی یا حرفی چند از های برای سید و شهردان من که واقعا در اون, در اون سنیا میخواب که امزایی جریبان کارو میترد که چه میترد بگرد در شیعه نوشته در ردو که چه سنتی در اون نماز بوده بسیار کتاب اتقاب ناپ مثلا امثال ایشان امثال مرحوم احمدیات اسلام تبرتی صاحب کتاب و و بیان امثال قطب راوندی که هم خیل داره هم به گوهران در آید معروف راید راید شده معروف مرمون قطب راوندی خرای جواید مرمون قطب راوندی معروف فرض عبورتسور رازی از مفصلین معروفه انصافاً هم کتاب عبورتسور بسیار کتاب فرماد دیگه. این در زبان فارسی اون قدرش راسته نشده ترجمه بسیار متن سنگین و خوبی رو هم از قرآن داره ی بیلو باقی شده خیلی هم محصول آیه به اصطلاح مربوم آیه ساربین چهر و تجویی آیه آشاب حسن شهرانی الله و این شده در راز بسیار اتفاق نافعی ایشون هم غالبه نیست در طول از عرضم ادهی از مفسرین که در این وقتی زمان بودن ادهی از خواه های ما که در این وقتی زمان بودن اینها قادر بود خبر نبودن در مقابل برده شما ابن افریس هم یه گوه شما از ابن یه چند تفهی شاق مثل اصولمان اول سراعب داره اونجا هم متعرضه بحثه پس یهاش یهاش اجماع در میان علماء ما از سال چارزاد و پنجه ها همون مسلک سید مرتضا گرفته شد بسن در مقابل قدیت خبر اصولا این هایی که جنبایی به قول مرمومه این در محسلین رو مورد از محسلین یعنی این هایی اصول و قبائد و خیلی برسی بار مراجعه نمی به سلام ها اصولین در بار لفت این در محصلی از اینا اجماع رو میگیرن در مقابل خبر رو قبول نمی کردن این از تا سال و تا حدود سالهای شیستد و پنجا شیستد و پفتار مرمون محفظ حالای میدن که واقعا با یک از فوقهای فوق الواز بزرگ تاره ایشون یه راه دیگر رو میگیره نه اون حجیت تعبد خبر رو میگیره نه این حجیت اجماع رو به این معنا میگیره بیشتر به خبری که عمل شده لبته باز هم ایشان کاملا واضح نیست که دقیقا بیشتر روی وصول به خبر کار میکنه که خب این برای خودشم ارزش خوبی داشت، لیکن پسر خواهر ایشان برمومه احلامه اینه از الله نفسه ایشون دو مرتبه هم اجماع رو قبول می هم خبر رو قبول می کنن اون تهول احساسی دیگه که حالا ما ساله هفت سر او در و حالا دوران علمی شه هفت از سال هفت این تحول اساسی و علامه در تفکرات شیعه ایجاد می کنه چون ما خواب بدم حالا پر به اشاره اجمالی تقریبا میشه گفت اون علامه از سال های تفکر شیخ توسی رو تدر می کنه این تفکر شیخ توسی چار مشخص نموز علامه مشخص میکنه با سر گبتیم چار ها در در باران شهر توسی معیل نیست دقیق نیست در کلمات علامه این چارکروه ها در نیست میشه تا حد زیادی البته برگردیم حالا بین 450 تا 480 که عرض کردیم از سال ابن ایدوید اینا ها برگشتن کنند امید ها به شروع کلی میشه ها در بخص موجه از شبر عرض میکنید شب عدله که محتضله محسوسن چون محتضله در مقابل حجر خبر بیست دادن شیعه شاد بشه بود متأثر بود عدله که محتضله اقام کردن امه مختلف اشکالات به حجر خبر دیدن وحس حجر خبر عرض می کنید با جایی که محسوسون حتی ادعای استحاله تعبود مثل ابن قبل ابن قبل از ماست اما از اهل یعنی تفکر محتضلی که اصلا مستحیل تر بوده و تر بوده محبوب سهل مرتضا معتدل تر یه نیست که دلیل نداریم. دلیل بر بود جهه و بر در از بر این زمان 450 و به بعد که شاگرده از در اول شاگرده شیخ توسیه خیلی آرام هر داری می کنید شاگرده که محبوبیش ایشان محبوب به مفید ثانی پسر محبوب شیخ محبوبی یا ابو علی محبوب به ابو علی ایشون پسر مرحوم خود شیخ سوسی اسمش هم حسن حسنه حسنه محمد چون محمد شهر سوسی محمد حسن داره حسنه پدرش حسنه پسرش همه حسنه داشته از ایشون خیلی آثار علمی روشنی ما نداریم یعنی من نمید. اما به همه اون هایی که ما آن کتاب هایی داریم اینا مثلا میان بودیدون که اجماع رو محضره کنن از سلم و در مقابل خبر، و حتی اگر هم میخواستن در محام استدلال و بحثای کلامی هم چیزی بیارن حوالی یکی مطلب رو به اجماع میدرستن محوم صاحب اتجاب محوم تبرسی احمد بن تبرسی ایر صاحب امیان اسلام میرد محوم صاحب مجموع باید. ایشون هم مثلا در اول کتابش یه روایاتی رو تواندنی جاورده همون مجمعان علیه هاست تحبیر ایشون همه این مرسله بگیم مجمعان علیه هاست مرمون ایستاها به خدایه و مرمون صاحب وسایی و اخباری ها از این عبارت استفاده اینکه این اخبار ها رو برسته و زهاره مرسله اما ایشونش جای اجماعه مراد از مجمعان به ها از کرده یعنی متلق <تصحنت> خیلی های داره و دردش محل اشتاله اینطور نیست که بخشن باشه ایشون تربیر که این به قطعه همه سحنه اشماع در این فتره زمانی یا به عنوان پشتیوان و معیده خبر یا در دقیقه یعنی اینطور نبود که ایشمال خودش به اصطلاح کنار زده بشه یا به عنوان یک وقت در مقابل سبر که همون راه مرمون سریل منتظار بود نخسی دیگری در این زمان ظهور کرد که این هم روی این مسئله تاثیر گذاشت از تا قبل از بغداد یعنی تا قبل از شیخ طوسی متألف شیعه نبود به صورت عملی مراجعه کنند خوب از بکنید مشخصه های مذهب شیعه در مقابل هستند ها و مانکی ها و مذاهر احل سنت این بود که اونها در جایی که نفسی نبود به اصول مراجعه بکنن این مراجعه به اصول رو اصطلاحا بشه اشتحال هم میگفتن یعنی به حواهد به اصول. حالا اشتهار پیش احل سنت منجرم شد به قیاس یا منجر شد به استثاب در شبات حکمیه یا چیز دیگه اما به طول کلی به این قیاس گاه نه قیاس میگفتن گاه یا اشتحال میگفتن. رسم شیعه تا اون زمان که دفت بکنیم تا زمان شیره توزی این تا سالهای طبعاً چهارسر چهارسر و بیت. تا سالهای چهارسر این بود که اصولاً به اصول مراجعه امر کنن لذا این اینه توزیحی دادیم. شاید ده از روایات که ما الان درش مناقشه میکنیم یا کتب که درش مناقشه میکنیم مثلا کتاب سکونی سر و عمل به کتاب سکونی یه مقدارش این بود این در کتاب سکونی روازاتی بود که در روازات از حال ما نیامد در مورد شباید ما نداشته علمای شیعه دیران در آن هم به این یا در اونجا باید به قصود مراجعه کنن و نیم خواستم مراجعه کنم. یا به همه این که درجه دوست و درجه یه فهم ها باید فهم منسوس بمانه و از کردیم عبارت شیخ توسی در مقدر مقصودی وقتی خوندیم اصلا شیخ توسی که اینقدر اصحاب ما مقیده بنستن حتی محن عبارت عرض نمی کن رو بزن لحظ مراده شیخ توسی چون ازمان پیدا کرد و شیخ رو شد و مقصود رو نوشت خب مقصود یک فکر تطریقی است خب خیلی از جهاش رقایت نیست و یکون فتوا داده خب درقت بکنه خیلی از جه یعنی اون دیوار اون دیوار خلقه شکست این کار احتمالاً یک ندره دقیقا نمیدونیم مرموم ابنشونه چون تر بودا ابنشونه برسته در تبره بعد از کلیمیه یه بردار بعد از مرموم ابنشونه هم فقیه تقریقی داره یعنی خیلی داره که در جهد ظاهرنن احمدی چی احمدی، فلان احمدی، فیقل محمدی که در اختیار معلوم علام بوده کتاب های دیدون چونه دو ما نرسیده علامه نرسیده و شداله نروی عقیق اومانی این دو نفر که متهم به عمل به خیاس یک مقدارش این توریسی ما هم همش اینا در فقه تطریعی وارد شدن در که؟ در سالهای مثلا 1450. هنوز شیه تو فقط وارد نشده بود شیه فقط تو فقط بود اگر کسی می خارج نصفت خانیدان بگوزنید این اشتهاده او ایتون این قداستن هنوز پیدا نکرده بود محفی شد بیشار خارج این با نفت بگروش شد اما تو توسی به خاطر عظمتی که همین کاری که برده سن سال همین شهر توسی هم هم این کاره که هم فقه و طبیعت ولی دار شما هستم فقه محسوسه گاهی چند برابر نهایی هست هر دار ما شهر توسی نهایی شهر توسی فقه منسوسه محسوس شهر توسی فقه تطریریه خب طبعا در خیلی از فروعیشون فتوا داره درست؟ تو اونا هم نفس نیست محسوسه چیزی نزدیک از دیگه 70 دردش منصوص نید 70 دردش در در منصوص نیست. به خاطر شیخ هم در اقوالش میدار در در مقدمه محسوس نمیشه که از هار ما این حالا به لفته زمان بود اینه اول از ها به شدن کنترول میگن بازه نمیشه خور زیاده، مسائل زیاده نمیتونیم ما با فقه منصوص و درست محسوس ما کمه احراب ما هم که ما فقره تطریقی رو روی اصول احضبه این تصابه دیم دقیقه بخاریم و, و مسائلی که در نصوص نیامده اما به همون اصول احضبه اما عبارتی که شاید سالا کرام خودم نهب بندون باشه انما و اصول و علیه کما تطریق از کتر این دو تا رباید هر که دیدم زیادن برزرشان سرگیه برمانتی من زریف سرم تو که منصوب به ما سابقی منصوب برزر ها رو زریف هم مستار سرگیه آمده رو ما میگید این محلی و روشن شد از زمان ابن ادریل چون شیف این کار رو کرد چون شیف پشه تفریهی رو آورد. این باب رو باز کرد هر زمان از ابتدایی، یه واشواش یه مراجعه به اصول پفش ل. <تصفيق> اون پفیک درشی اول که به اصول دزایشون، اگر مناره دو بکنی حتی در جای که رواد اسمیه و از نتمندش به باعثات لدارم. انشا شما استفاده در کلمات مس ابتدایی، یه واشواش کسرت اصول عملیه رو میبینیم. در صادق این اصول عملیه در کلمات که الان عزیم کنم که کجا بیشتر آماده. هست اما این مقدار نیست پس دو تا, یه... تا تحول اساسی پیدا شد یکی این که دست از خبر برداشتن به خاطر اصول در دل بریم اجید خبر یکی این که یواش شواش رو با اصول باب شد کجا در تلمات قبل در زیاد اصول آمده است کردم من توضیح دادم لیکن یه اصحاب مثل این رو شده کمی پراتی کردن توی خلاق شیخ سلسی اصول زیاده چون مبسود دلیل رو نمیدیسه فقط فتوه رو میاره دقیق می کنیم در کدام مبسود هست اما دلیل رو نمیدیسه خیلی از فتوه هاییشان در فقه فتریهیه خب تبیردن در فقه فتریهی نسید وقت به قاعده درسته کن فهمونی فهم مبسود نمیگه از آسل برایه داره. داره توش اما کمه اما توی خلاف این خلاف زیاده از من که این کتاب خلاف رو و مخصوص رو شیخ از اهل سنف گرفته هر کتاب مثل هر دو کتاب مال سنیان چیک بردسته آرائشیه بهش اضافه کرده فعلا خود من نه اصل کتاب خلاف رو میدارم چه در کتاب مخصوص لکه این کتاب محسود کاملا وازنه مالک فقیه شافعی کتاب خلاف چون فکر خلاف و مقارنه حس نکردم مال کدام فقیه مالکی شافعی همولیه و کتاب خلاف توسط که به اصول زیاده مثلا دلیل اینا و ام نه اصلاحات مراید حتی زیاده اصلاحات الاختیاد زیاد چه و این رو من چند بار فوزی بزن او دقن کنید؟ توسط شیف در کتاب خلاف به اصول جدریه برهانی نیست یعنی انصافا الان وقتی به کتاب محل. خلاف برمیگردی مشکل داره. شون از کنم کنارا در بعض یا اگه شک در جزئیت مثلا خوندن یک سوره جزئه واجبه ایشون توسط میکنه به حساب احتیان اگر شک در جزئیت این لکه حکوم ایشون توسط کنه به حساب مراهد یعنی یک جا در شکل در جزید تماثق و اصافل احضیات می کنه یک جایی که در همون شکل در جزید تماثق و اصافل برای بی در بین اقل و اصل تماثق این مبانی شیخ در خلاف روشن نیست به ذهن ما اینطور آمده به ذهن از بزرگان دیگر آمده به ذهن ما این آمده چون مرحوم شیعش وقتی مثلا مخواد و بر اساس بکنه یعنی در محاقل یک در درد سنت موافقم با بر اساس چون فرده شیعه در مقابل اونها اگر اساس الاحتیاد در یک از اهل سنت در اینجا اساس الاحتیاد بید یعنی شیعش نیامده فقط اثبات مذکب بکنه به مذاهب اونها هم نظر داره این اصطلاح ما در محجم میگیم جدر صناعات جدر که شیخ با اصول در کتاب خلاف صنعت جدل نه برهان نه که اسوار یا به تعبیر دیگه ممایو تجبه ها علیه نه ممایو تجربه ها شیخ حتی روایات روایات و قواهر جودی دیگه ممایو تجبه علیه هم نه ممایو تجربه ها اگر ممایو تجربه ها باشه جز برهانه و حال این عنصر دیگه هم اضافه شد یواش شواش در تحتمات همه سطح به اصول بام شد و این منشه این شد که یکی در روایات که بعدها بفتن زریف و سنده او دفعه بکنه هر صادقانه هم بشه عمل کردن کولینی هم عورده صدوب هم عورده چون روای زریف بود یا گفتن ما حال عمل ندیم خب اگه برایات عمل ندیم شاید کنیم برگشتم به اصول برگشتم به خاطر برگشت پس در سیده شیعه در حیقت یک تحول کلی پیدا شد که در این سه زمینه بود یکی اجماع بود یکی خبر بود یکی اصول بود یعنی اگر پس این شهر کلیمی یا سلو برایات سکونه عمل می آلبن برایت سکونی آلبن شد باره نمون گسته داریش جاییست که ما خودمون روایت نداریم مثل از زهاره هست پس که محمود مسلم نداریم شاید من شاید بگم که نیتی ببنس طولانی داری که همان جشنجا نیست شاید خودمان نگوسم خب برایت سکونی هم هم کنیم آره سنی یا چیه زاید که سنیه اده از ماهات این شده که اشون چیه هست خلو. ما برایت سکونی هم اینه که خوش رو میاد دفاع بکن و هر حال به وقت بردیار بودن که سکنین چی بشون برد برد زمین خوش رو در قرن چهارون رجوع بحث عملی در شیعه عیب ای بود این عیل این جور هر جور برگاسته اینه که شما یواز شوازید زمینه ها تایدار شد که بندی بشه برای خبر منتقی شد به علامه علامه بندی رو شروع کرد انشاءالله منم خیال که روز تمام میشه علامه بندی رو شروع کرد یه یک میاربندی یک میاری و یک درجه بندی شده هستو ندود شدید اون رو علامه در چیه بود علامه چهار رویز کرد خبر رو سهی و به اصلاح حسن و موسط و ضعیف. و در باب اجماع هم علامه یک تحول ایجاد کرد شد. ان شاء فردا توضیح شد. اینا توی گفته نشه توضیحات چه فردا عرض در باب خبر علامه خبر صحیح رو مطلقاً قبول کرد خبر حسن حسن اینکه راوی امامی باشن مندوب باشه اما توصیف نشده باشه خبر حسن رو مشروط قبول کرد مشروط به اینکه معارض نباشه این معنای علامه خبر صحیح مطلقاً مابود خبر حسن اگر معارض نداشته باشه این کجا این تو خبره توی اجماع هم شبیه علامه درست کرد قبل از علامه نبود. یکی اجماع درست کرد یعنی همه فقطوزه این هم مثل خبر صحیح گفت مطلقاً بود یکی شهرت که این فتوا مشهوره این هم نبود قبل این خب مشهور رو هم قبول کرد لولن ما آروم پس اجماع شد شبیه خبر صحیح مشکور شد شبیه خبر حسن کارهایی رو که یعنی شیخ سوسی گفت خبر واقع بود جده اما ملیار بندی و شرایطش رو چاچول رو مشخص نکرد. هنر علامه این بود که هم مثل شیخ سوسی اجماع رو بود هم خبر رو فرد از هر که علامه خبر رو چهار دست کرد از چهار دست دو قسمش قبول کرد لیکن با این تفسیر یک قسمش رو مطلقا قبول کرد و معارض داشته باشد یک قسمش بلا معارض قبول کرد که اینطور رو فردا توضیح میدن در بحث اجماع هم همین کاری کرد علامه یک اجماع به معنای اینکه که فتقای علمان بر اون رو مطلقا حجر گرفت، یکی هم مشهور میشوند در بحث شهرت فتوایی بگیم از زمان حلامه شروع شد شهرت فتوایی را لکه این شهرت فتوایی رو، حجت گرفت اگر معارض نباشه در فتوایی را نه اگر معارض نباشه این هم کارمون که علامه الله انجام داد یه تحول اساسی در تفاقیلات شیعی ایجاد کرد که و این باید خیلی کار بشه این در بحث خبرش در بحث اجماعش باید کار بشه البته از کلم لغی کنه از مرموم محدث استرابادی, استرابادی، خودم شایدم دیگه با شما توزیه نیست. که شیعه در دو روز در بخورده این روز سقیریه ای که روزی که علامه این اسطلاحات حالا حد اما حسابا تحول بزرگی در تفکر شیعه این ت کاری رو در حیمت شیف کار چهار و انجام داد، سال بر تک می کن حجیه و حتی حجیه اجماع و حجیه در در کلمات شیخ و سید و واضح نیست. اینها بعد از سال علامه حدودش هم مشخصه به جایی دو تا شدن چهار تا دو تا سبر تا سبر تا بقیه هم که حجیه ندونه که انشاءالله فردا سوزی هستی هر